اینجا همیشه همینجوریه چی جوریه؟ سوت و کوره هیچ بنی بشری رده میشه دمدم های غروبه هم رفتن خونه از زمانی هم من یادنا سوت و کور نبوده تا منظور جنابالی چی باشه آقا مهندس من مهندس نیستم امری ندانه ازاد جلوت کجا داریم اینی؟ دیوانم اومدم وسط جلوتو گرفتم امری داریم بفرمان در خدمتی این اون ماشین منه خدا زیادش کن خدا بچهای شما شمارم زیاد کنه انشالله شاء الله ان شاء الله آدم تنش سالم باشه تی باش چی میگم ببین اون ماشین من از کار افتاده ماشین خراب میشه از کار نمیافته فکر کنم ماشین پلا چیز مهمی نیست الان نگاهش میکنه کار مار کاربوراتور باشه یه ذره جوش دل. اونم وارد می تو داری میری تو کجا درست کجا میری مگه تو مهندسی ها مهندسی اون ماشین ماشینیه که جناب بتونید تعمیرش کنید متوجه میشین؟ تعمیر خودشو داره آها کامپیوتریه بی ادی میگم بض شانسی میگم بض به خیلی چیزای دیگه میگم بض منم آدم بض شانسی ام بالاخره گوش میکنین؟ من چی میگم خدا ناکنه من داشتم ما در خدمتم بعد یک تلفن بزنم اینجام آنتن نمیده میفهمی؟ تلفن بزنم تعمیرکارش بیاد اینجا تعمیر کنه هز... هزارتوم کار ب... ببینم میگم بیام کمک کاری داری موازم خواره باش میگذه خیال تخت این دورو به را نمیده قرار اون برای دکل نزد کنن اون بقی راحت میشه وای وای وای دستت رو گفتم موازم باش میگذه بزرم ازت ببند نمیشم چکار داری میکنی؟ دستت رو به ببند ببن خودت ببند با تو خودت گفتم خاک بشون خارجش بیشتر میشه ها. اخو تو دکتر هستی؟ دلخورم میشه نه خیلی حالا کجا من میتونم تلفن بزنم؟ بالا همین تاپه مهمون پزیر است فقط اون تلفن داره بله خب، تو میتونی منو ببری اونجا؟ بله که ببری آقا مهندس ببین من مهندس نیستم، اون چای که مهندسی خب نباش، منو بکنم ماشین ماشینتو درست کنم خیلی خوب. خیلی خب اسربانی شدم دیگه، ببخشین خدا ببخشین، بفرمان بریم، خدمت به خلق روزی ر باشه چشم متوجه شدم دستموزتون رو میدم چند برابرم میدم که بفهمید خداوند روزیتون رو زیاد کرده کی حرف پول زبیه تو باشه بده این یارو مهمون خونه خیلی دوره نمیشه پیاده رفت خیلی نه یه دو ساعتی راه هست تا زیرار بلد باشی توفارم نشه آخه یه جو بادبارونا بده میاد اینجا امن هست؟ خدا عالمه. من از تو پرسیدم خدا که اینجا نیست جواب منو بده تو داد جواب منو بدی استغفرالله اینشانه امنه یه آیه تلکو برسوی بخون فوتکو بش نیستی من میخونم بیا تو باش شب شد آقا اون من از خدای کار کردم این بابا جون این روزا گربن من از خدا موشته نمی چقدر بده بده شما رو نمی ولی ما من از خدای کار کرد های گذاشت بود هم نگاه کنم اون هم یک کارش اون خب همینه که وزب اینجوری آقا دستشویی کجاست بابا. آب‌شویی کجاست؟ اونجا سمت چپ. ببخشید آقا. آب غطه. خیلی خوب. لطفا این تلفن داره من می‌بذارم من میخوام یه زنگ بزنم. تلفن و آب و همه چی غطه آقا. دیشب یه طوفان اومده. همه چی رو آب بین برده. ببین آقا. من ماشینم تو جاده مونده خراب شده. اونجا گذاشتمش. گرون قیمته. نمیتونم ولش کنم به امان خدا که. بعد زنگ بزنم تعمیرکارش بیاد درستش کنه تو این ده تنها جایی که تلفن هست اینجاست شما اگه تلفن احتیاج داری باید تشریف ببرید شهر یه اتاق بده من یه اتاق بده فکر کنم مجبورم اینجا بمونم دیگه تا صبح بهتره اتاق بزرگ بده چهار تخته سه تخته هر چقدر هرچی بزرگتر بهتر خیالتون راحت باشه شناسنامه و کارت ملی لطفا تو این ده گورام حالا شناسنامه و کارت ملی بعد بدین این شنناسم کارت ملی هم ندارم فکر کنم هویتتم از رو همین می تشخیص بدی بدون کارت ملی که نمیشه ولی حالا ببینم میتونم وساتون بکنم. البته بزرگ این اتاق ما دو تخت است که اگه بخوان یه تو هم میتونیم بهش اضافه کنیم شادم دوتا من چند نفرم؟ یه نفر تو اضافه اضافی میخوام چیکار کنم؟ تو اضافه اضافی میخوام چیکار کنم؟ ها؟ ببخشید آ اتاق نداریم. لنج میکنیم که اتاق نداریم. کی میاد اخی بیخ گور سیاه از تو اتاق بگیره ها؟ لج نکردم قربان. ما اینجا هتل پنج ستاره که نیستیم با کلی اتاق همش دوازده تا اتاق داریم که اونم یه گروه ایران گردیم مادن همشو گرفتن خودتون میتونید ببینید چرا چراقدر من شنستان میخواستیم؟ چرا از من شنناستان بخواستیم ؟ گفتم اگه مدارک هم نباشه بهانه مدارکو بیارم نگم اتاق نداریم. این سیاست مهمانپذیره. چه سیاست مزخرف احمگانه ای؟ خوش سیاست مدار شما. ببینم والا اینجا نمیتونم باشم جایی هست دیگه که برم اگه میذاشتید میخواستم بهتون بگم این چیه این آدرس یه خونه ویلاییه که شما میتونید امشب اونجا بمونی طرف مهمان خونه اومدن بفرمایید لطفاً ورستی ای به چشمون غزل خون میرسید خودت تو نگهدار خودت تو نگهدار ای دل دیگه بالو پر نداری داری پیر میشی یا خبر نداری ای دل دیگه بالو پر... سلام میسه که ما هر زرت خیلی دوست داره درست به وقت رسیدی موقع شام بفرمایید بالا برای اجاره اتاق باید با شما صحبت کنیم بله باید با من صحبت کنیم من تا دو تا کاری که با هم نمیشه انجام داد شما بفرمایید بالا ببخشید رو کجا باید بشورم همون بالاست بفرمایی بفرمایی نترس اونم اسما خوش اخلاقه ایه ایه آروم باش زیروسیان آروم باش زیروسیان آروم باش بشین بشین جانو ببخشی این آدمه دیگه بشین بشین بشین, بشین. برای قلب خوب نیست گرست کن خب زیروسیان ده انتباه کن من این بزنم بذارم زیر زبانه که آقا سیر روز دنت واکن دنت واکن من قرص بزنم زیر زبونه آه. حالا آرام ببند آروم باش هیچ هم ننترس ببخشید این دوست ما سمتکش گوشش نبود صدایش زنگو نشید بند عضو میخواام ببخشید. دستشویی کجاست؟ انتهای راه رو ستی چپ دست با خودم نهی بردم کباب همایی خواهر؟ نمیشه باقا. نمیشه باقیم از سه کنه هماییون از سه این باید نکنم حالا اینم حتما باید به با شما شام بخوره؟ آقا این ده سال با ماسه هیچ مشکلی نداره نگرانون نباش. آقای ای که این کباب رو با عشق درست کردن واقعا که چی تو درست, درست نمیشه. دستتون باز نکنید. ببین اینجا موبایل آنتن نمیده. راحت راحت باش. هیچ که پیدات نمیکنه اینجا. غذا تو بخور. تعارفی هم اینجا در میان نیست. نمیکشیم من براش بکشم. نه نه نه. من اصلاً ترک کردم هم شامو هم سیگارو. بخور عزیزم. ترک کردم چی سیقاییه؟ سیگای موقت. سیگای موقت. لابد به سن ما برسیم دائمیش میکنیم <تصفيق> <تصفيق> برای ویژه اتاق گفتی باید با شما صحبت کنم درسته؟ اما اول از این قضا بخورید. برنده خدمت شما هستم پس ها شما یاره؟ این ملک چند ساله است تو کار از این میل خوشم هم اومده بدم نمیاد بخرمش ببخشید فوضوری نباشه ولی شما فکر میکنم بیش از اندازه میخوری برای سن و سالتون میگم من حاضرم رو سلامتیم با شما شرط ببندم به نفت نیست با یه پزشک متخصص شرط ببندم فکر کردم تو دیگه. کار ملکی دیگه. شرط چی من شرط می مندم. تا دو ساعت دیگه تا دو ساعت دیگه چربیت اینقدر بره بالا که این یعنی شیر برنج وابری اگه باختی چی اون وقت من چی گفتن قبوله اگه تو باختی چی ها؟ این ملک کو به نام من می‌کنی؟ آخه من شرط درست حسابی می مندم قبوله نبتش. بعد گیری باختیم <تصفيق> از این شرط بندیت نمیتونی دست برداری آخه شرط بندی هم سوحازمه میاره دکتر جان گفته باشم آقا چشمید. دست شما برد نکنیم نه نه نه شما زحمت نکش بگم بالاخره چیزی نخوردی میخواد میخواید برات یک ترانه دبش بخونم. نه باسه چی نه برگه ترجیح میدم و برد ترجیح پرتاق باشن کنید. من ذمه جلاقه ای به این شب نشینی ندارم. در ضمن فردا صبحم کلی کار دارم. بفرمایید داخل، تکلیف رو روشن کنم. گيري چجوري هاو اینو مسخره کرد؟ دلش کن بابا انقدر سخت نگیر. سخت نگیر، سخت نگیر. آخه دکترم انقدر بی میشه. من کسرن فکر نمی‌کنم دکتر باشه هر کسی یه جور دیگه. حالا تو هم انقدر به خودت فشار نیاد واسه سر قلبت خوب نیست. یه خودام دارچین بریز تو اون چایی، گرمه. پساتون خوب بعد از اون همه دوست. به من فقط یه اتاق میخوام لطف کنید بهترین اتاقتون رو بدید به من. صبحم ساعت پنج بیدارم کنین چون 6 صبح کار دارم. صبحونم می حالا روی هم چقدر باید تقدیم کنم؟ حالا چرا نه این فرمایید بشینید؟ تا ببخشید بزنید. کافیه نه بکنم دیگه کافیه نه نه مگه شما میخوای سرویس برج و اینجا به من بدی تو این دهگوره آره من اینجا گیر بردی چون احتیاج دارم به اتاق تو آره میخوای من رو به تیقی گوشم رو ببری مثل همه جا دیگه همه تو نمینجورین همه جا همین هر هرکی زورش میرسه گوشم کی که دیگر میبره خب بفرمای آقا بفرمایید خوبه کافیه دیگه. کافیه؟ پس اتاقامو نشون بده نشون بده فردز رو بذار تو کار دارم پول تو بردار های دکتر پول تو بردار پولم بردارم باشه باشه چیه؟ چته؟ پس من میخوام این خونه و شماره رو روی همدیگه بخرم قیمت بده. یاله چرا میشه قیمت بده؟ جدی میگم نخند قیمت بده. همین الان میخوام بخرم. ببین مطلب اینه که اصلا اینجا از کسی پول نمیگیریم. ماچ میگیریم؟ یا اتاق صدقه میدین چی؟ اتاقتون ته راه آقا جمال لطف کن اتاق آقا رو نشونشون نشون بده. باشه بریم بفر. بشین آقا بشین بشین. ببین من صدقه از کسی قبول نمیکنم. جایی که بتونم پول بدم خواهش نمیکنم. یا اتاق میدی پولشو میگیری یا میگی نه. اصلا من با شما معامله نمیشه. آوای دکتر الان جای گیرت اما حالا که اصرار داری کرایشو بدی باشه اما پول ما قبول نمی کنیم اندازه کافی پول داریم احتیاجی هم نداریم چطور بازی کنیم بازی کنیم؟ بچه بازیه؟ خب اگه دوست داری باشی شرطش همینه ببینین چیزا چیز رو من کاردیر نیست خب من شما معاملمون نمی شه قربان شما من بخیر به شما رو به سلامت دفتر خوب آروم باش آقای دکتر حالا که داری میری یه لطریه بکن، این کلیدو بگیر در و پشتر از بخ من پیره مردم بیام تا اونجا سرما می کنم بعدا کلیدو از در سورش بگیر دست درد نکنم نشده ایم. متاسفانه انگار مجبورم امشبه همینجا سر کنم در قفل کردی؟ بله بفرماییت خوب هنوزم حاضرم بدون پول بهت اتاق بدم منم حاضر نیستم از شما اتاق بگیرم اینجوری چون از صدقه خوشم نمیاد قبلنم به شما گفتم حالا بفرمایید در ازای اتاق چکار باید بکنم؟ بازی خیلی خود. خود و زودتر رطفا شروع کنید که زودتر تموم شد خب پس بریم سراغ بازی موافقید؟ بله <تصفيق> <تصفيق> فقط خدمت آقایون عرض کنم که تا حالا نشده تویش بازی من به بازمان حاضرم سر هر بازی هم که امکنی شرط اومندم چون تاسم که خیلی خوش میشینه دستم که با برق آشناسه حالا تخته ورق ببین تو بازی ما نه ورق هست نه تخته شترنج؟ نه منچ؟ از بخواه مارپله بازی کنیم اگه چند دقیق دندان رو جگر بذاری همه چی روشن میشه عزیز جان شما زودتر شروع کن عزیز جان میخوام روی همتون رو کم کنم ببینین این بازی یه مقدمه داره اجازه بدین من اول مقدمش رو عرض بکنم من... همایون امجد قاضی بازشسته و مجرد. آقای صدر الدین تاهری که ما آقا صدی صداش میکنیم وکیل مدافع بازشسته هستن. خانوادهشون هم در خارج از کشور هستند. جناب سیدوس مشیری چون دادستان ستان بازشسته هستن. یه سالی است که از خانمشون جدا شدن. بچه هاشون هم تهران زندگی میکنن. آقای جمال تهرانی که ما آقای جمال صداش میکنیم مأموره. اجرای حکم هستن بازشسته بچه ندارن خانمشون هم فوت شدن مثل اینکه معرف بازیه نه خیلو منم صابر سایدی مجرد از تهران اصلاً هم قصد بازنشستگی ندارم ببینید این بازی اینجوریه که ما هر کدوم نقش شغل صابه خود اونو بازی میکنیم شما هم قرار رو در نقش متهم بازی کنیم اینجا مثلا دادگاهه. واای که چقدرم تنگ شده واسه دادگاه. اعضای محترمه هیئت منصفه. من از شما توازا می قبل از اینکه تصمیم بگیرید. به چهره مظلومه، موکل من نگاه کنی که مردوز ظلم قرار گرفته. رو شدین. این گامون بازیه. چه میدونم دوزد شاه و وزیر دیگه هر ای بلده. همه بلادن. شانس دوردیم نصف شریع نمیخواستیم گرگم به هوا قایم موشک بازی کنیم ما در بهتون بگم تو بازی و سقاپ هم حریف میترم باشه به اونم میرسیم اما بازی رو که متوجه شدی. بله بله من متهمم در خب متهم به چی؟ دزدی قطف قارت تجاوز چی؟ براخره باید به من تفعیم اعتمام بشه؟ بله معلوم میشه تا قانون هست که شما باید رعایت کنید. اول اینکه تا آخر بازی هر سوالی که از شما میشه باید با صداقت کامل جواب بدین دو اینکه تا وقتی که حکم صادر نشده نباید از بازی خارج بشیم. قبوله فقط تا کی طول میکشه چون من فرد صبح هزار تا کار دارم در از این قبلشم میخوام یه نگاهی به زمین این اطراف بندزم خوشم اومده خب بستگی به دادگاه داره خیلی خوب خیلی خوب پس بریم دیگه شروع کن. شروع کن دیگه. دوباره دوباره با شما دست بدیم دیگه. اون‌ها رو کشتم. چند برخله بوده؟ امشب بی گوشابیش. یارسام. بازی هم بسیار جوانمردانه است. شار بله، تا وقتی که شما زیر قولت نزدی جوان مردنه. سی دو کنید که برویم. چی تل کجا می‌دی؟ چیزی نیست. میام دوبار سازگاری دارم یه‌ر. آم ارزش هست و ارزش منترین چیز زندگیست مزخرف این آشقاله رو میکنم دیگه دیو شده لطفاً دست نزنید اونو عتیقاً بس عتیق بازم هستین چه ایراد داره؟ <تصفح> یکی کفتر بازه یکی سیاست بازه یکی زمین بازه یکی از شما جرم کنید <تصفح> واقعاً جدی گردی شما پس حالا اگه اینقدر جدی منم بایده شما یه دستشویی برم برگردم بله بشن روید باید جسد. شکل کردین. ته چراغارو خاموش کردین. دادگاه دیگه. مفاهمت بشین. بشین. کجا بشینم؟ اونجا بابا. دادگاه از این لحظه به بعد رسمیه. در زم لازم میدونم تذکر بدم. که تمام افراد تا پایان جلسه دادگاه باید یک دیگر رو با اناوین رسمی مخاطب قرار بدن از آقای معمور هم خواهش میکنم منشی جلسه هم باشن آقای دادستان میتوانید شروع کنید ولی کش از سابر قبلا که گفتم به طور کامل بفرم سابر سایدی این هم که قبلا گفته بود مدرک تحصیلی بلا شیپ گردن متفاقی نشدم بله متخصص جراحی مغز و حساب فوق تخصص سرگردن شغل <تصفيق> خوب فوق تخصص سرگردن که نمیره بقال بشه که دکتر میشه دیگه قاعدت هم نه ممکنه اگه مقدار توضیح بدی در واقع شغل اول میشه ریاست بیمارستان دیگه چون بیشتر وقت همون میگیره در هفته هم یه چند تا عمل میکنم در هفته چند تا یعنی چقدر؟ میانگین مثلا 6 تا و تا. هفت تا عمل جراحی مغز در یک هفته. یعنی روزی 1. میانگین گفتم دیگه. عمل مغز عمل ساده ای نیست به نظر خیلی زیاد میاد. اگه من جراحی زیبایی میکردم همین لبلوچه و و گونه و همه جا. خب در روز میتونستم این تعداد عمل کنم. دستم هم خیلی بیشتر از اونه. استرسشام خیلی کم تره. شما باید تاجر می شدید تا پزشک. اعتراض دارم. ایشور می مسیر جلسه رو عوض کنم. اعتراض وارده. آقای دادستان لطفاً از موضوع خارج نشید. شما میگه فلج نبودید. نه فوکشیا و سخان دارم. قام درد می‌کنه. <متصف> لطفاً سکوت جلسه رو رعایت کنید. بفرمایید جناب دادستان جناب شما چند سالتونه؟ پنج و پنج تقریبا تقریبا بفرمایید. تقریبا یعنی چی؟ و پنج سال و نه ماه و سیزده روز و نوزده ساعت و 20 دقیقه و سی که ابتش یک پس شما دو پنج و پنج سال و نه ماه خب اینم کشد تقریبا شما نسبتی با آقای قلام حسین نداری. نداریم کی؟ قلام حسین کی هست؟ نویسندهست نه آقا من با عدیب با دبایی قرابتی ندارم پدر مادرتون زندن؟ خب هم آره هم نه یعنی چی هم آره هم نه؟ آقا خب برای که شما راجع به دو نفر از من سوال کردی بابام یعنی همون پدرم که شما میگی مرده چند ساله ولی مادرم نه زنده است. الان با باید تو دودن همسنه سال شما ها باشه البته بیشتر همسنه سال ایشون خدا پدرتون رحمت کنه من اصراری ندارم چون چه رحمتش بکنه چه نکنه چه فایده من داره مادرتون الان کجا؟ آخرین خبری که ازشترم اینه که خواهرم ازش میگهداری میکنه یعنی از مادرتون خبری؟ به حال شما چه فرقی میکنه؟ لطفا به سوال دادگاه جواب بدی نمیخوام به این سال جواب بدم. شما نمیتونید لازم سآلهایی که ازتون میشه بیتفاوت ماشی خیلی خوابا حدود از سی میشه که ازش بیخبر سی سال سی سال وقتی زیاده بر. به چه دلیگ؟ اونش به خودم مربوطه جناب بهتون اخطار میکنم اینجا دادگاهه هر سوالی از شما میشه باید سریع و روشن جواب بدید ویلکون بابد با خودم میگم گوش کنین مادر من دختری رو که من دوستش داشتم عاشقش بودم رو برای برادر دو قلوم کاری کرد متوجه میشین بیشتر از اینم دوست ندارمش توضیحی بدم بعد دختر چه جوابی داد ای بابا میگم من نمیخوام در این مورد صحبت کنم اصلا چه فرقی میکنه که دختر چه جوابی داده اون ماسمسه کو اینقدر نزن روی اون میز سردرد گرفته از متهم میخوام احترام جلسه رو حفظ به قوانین احترام بذارن باش باش دختر قبول قبول کرد نگه اون نمیدونست که شما عاشقشی؟ نه چون هیچ وقت جرات نکرده بودم اینو بهش بگم ولی خوب مادرم که میدونست شما به مادرتون گفته بودید که عاشق اون دختری؟ نه نه؟ ولی اون میدونست اون از کجا میدونست وقتی شما به چیزی نگفته بودی خب چون مادر مگه میشه یه مادر همه چی بچه رو ندونه؟ میشه مادر نفهمه پسرش عاشق شده؟ خب اون از کجا باید میدونست که شما عاشق اون دختر خاص شدید این فقط اینو میدونم که اون میخواست قدرتشو به رخ من بکشه برای که میخواست به من ثابت کنه هیچی نیستم ولی من به اون ثابت کردم که اون هیچی نیست سی سال از این قضیه گذشته تو این مدت هیچی برای شما عوض نشده؟ چرا؟ چرا؟ سی سال بیشتر ازش متنفر شدم. بعد چی کار کردید؟ یه سال بعدش دیگه خونه و زندگی و همین چیو ور کردم و به کمک رانند راننده کامیون قاچاقی رفتم آلمان. یعنی شما فرار کردید و مادرتون رو برای همیشه رها کرد. ای جز رفتم نداشتم. در ضمن مادر من انقدر قوی بود که بتونه از خودش مراقبت کنه. برادر من بود. از سبح تعالی شما مادرتون رو ندیدی؟ چرا یه بار عملش کردم با اینکه اصلا راضی به این کار نبودم. بیماری مادرتون چی بود؟ یه تمار تو مغزش بود که البته بدخیمم نبود نتیجه عملتون چی؟ خوب شد البته بگذاریم که در تمام طول عمل به خودم بد و بیراه میگفتم که چرا این کار قبول کردم اون مثل آدم بیگناه رو تخ بود و مرگ و زندگیش تو دستای من بود میخواستم انتقام تمام عمرم رو ازش بگیرم فکر میکنید گناه مادرتون به این اندازم که میگید بزرگ نبود؟ بزرگ نبود؟ باعث شد که رابطه من و برادرم که مثل جونم دوستش داشتم تیروت دار بشه دختر رو که عاشقش بودم ازم گرفت بزرگ نبود باعث شد که خونه و زندگی و رفقامو همه رو ول کنم برم آواره بشم بزرگ نبود من که از زور خجالت زبون مادریمو به زور حرف میزدم. حالا باید زبون آلمانی یاد می گرفتم باید پیشی کسایی زندگی می کردم که یدشون به من میگن گن کل سیا. گنزت تو زندگیم رفت اما اون مجبورتون نکرد که خونتون رو ترکنید ممکنه ولی باعثش کی بود من نمیتونم تو خونه ای که برادرم به دختری که دوستش دارم هستن بمونم شما چرا فکر میکنید که مادرتون اینقدر با دشمن بوده اصلا فکر نمی کنم چون واقعا دشمن بوده بلی که یه دفعه نشد منو از زیر دست و پای پدرم که کتکم میزد بکشه بیرون همینجور وای میستاد دیگاه می کرد. از اون زیر میدیدمش همیدی؟ می هیچ وقت نداشت حرفم بزنم هیچ وقت هرچی خواستم از من گرفت لعنت به این کودکی احمقانه اصلا نمیخوام بهش فکر کنم نمیخوام راجب اون موقع حرف بزنم بسید شما ترک ترکدین دیگه کسی دنبالتون نگشت؟ بعید میدونم چون همونقدر که من از بودم متنفر بودم حتما اونم از من متنفر بودم چون نفرت مصریه برای راست یا درو خوهرم میگفتش که پنی سال دنبال من گشتن بدم فکر کردن من مردم مگه شما با خوهرتون ارتباط داشتی؟ خب بله اون خواهر بزرگ منه چرا خوهرتون از این قاعده مستثنه است؟ که هیچ من تنها نستشته تا وقتی که به جای من کتک می‌خورد شما خواهر برادر دیگه ای نداری آه. نه نه ازدواج کردی بله با یه زن روس کجا باش آشنا شدی تو دانشگاه پزشکی آلمان دیگه آخه وقتی که خواهرم منو پیدا کرد بهم به گفتش که اگه درس بخونم خرج تحصیلمو میده ازدواج کرده بود و شوهرش خوب بود منم پیشو گرفتم و رفتم دانشگاه دیگه اونجا بود که با ناتالیا آشنا اسمش به ایتالیا می خوره دورگاست الان هم با اون دیگه میکنی؟ نه رابطه همون به یه سالم نکشد طلاق گرفتی؟ آره همون سال اول عامله بود که اصلا جدا شدیم البته من بهش اصرار کردم که بچه رو بیندازه بعد اون قبول نکرد زنی که احمق خب وقتی این بچه دنیا آمد دیگه ما با هم نبودیم در دیه شب که داشتم برمیگشتم خونه دیدم بچه رو گشه رو پله ها جلوی در خونه وسط زمستون تو که ولی اولین بار دخترم رو بغل کردم مطمئن بودم که مرده ولی به طرز حیرت آمر زنده با. شما مشکلتون با همسرتون چی بود؟ هیچ دوستش نداشتم از اولش هم به خاطر لجبازی با خودم باشه ازدواج کردم بعد دو سن ماه هم دیگه نمیتونستم تعمالش کنم اونم به من میگفت مریض جنسیم خب چون میلی بهش نداشتم اینجوری شد که هر کدوم رفتیم سراغ زندگی خودمون دلیل اینکه همسرتون نمیخواست بچه رو بندازه چی بود ظاهره که میخواست منو آزار بده همسرها تو همه جای دنیا همینجوری امن هم. دیگه زبازی نکردی من از زن متنفرم ولی برای مرد باید خیلی سخت باشه برای من سخت نیست آدم هاول به خاطر نیاز جنسی که اون خودش رو بدبخت نمی کنه شما نظرتون راجع به جنس مخالف خیلی منفیه زنا زندگی بخش نیستن اونا زندگی رو از آدم میگیرن دخترتون الان کجاست چه میدونم بابا یه گوشه دنیا باید هر چند وقت یه بار یه ایمیل میزنه پول میخواد منم بهش پول میفرستم که یادش باشه باباش زنده است ببخشید بفرمایید چیزی میخواستید بگید با اجازه دادگاه محترم الان وقت خوردن قرصه دادگاه برای پنج دقیقه اعلام تنفس میکنه صمیقه از این قرصتا رو طبقه تجویز پزشکی گرفتیم یا همینجوری پزشتر خودیم تجویز پزش که بابا همتون قرص میخورید اللہیشون که به من سر سلامتی شرط دسته منم که نمیفهمم اصلا که گاو بندی کردون نگه من مرده باشم که بذارم به خاطر یه شرط بی خودی سلامتیشو به خطر بنوزیم خیلی خوب آقای باشیم بیریم دادگاه خوب آقای اون جلسه رسمیه گفتم اینقدر اون مسمسکو نزن اونجور اصاب منو خورد کردی اون چراقانم روشن کن لطفا اینجوری عصبی میشم آقا جمال گربونو دستید اون چراغ روشن کن آید از شما میتونید ایدار بدهید. میتونید بفرمایید که امروز چنجنبه است؟ به <تصفيق> از سلامت روانی من مطمئن بشه. دوشنبه است. روز دوشنبه شما نباتون مال کارتون بشی. من کارمند اون بیمارستان نیستم، رئیس اون بیمارستانم. یعنی اصلا صاحبشن. یعنی هر وقت بخوام، میرم هر وقت بخوام میمونم. یعنی هیچ حس مسئولیتی شما رو وادار نمیکنه که یه روز کاری توی بیمارستانتون باشی. اعتراض دارم که نبایی قاضی آقایی داتوزان سوالای گهدار بپرسم وارده میشه بفرمایید امروز داشتین کجا میرفتی؟ آره میرفتم کارهای محزری و مالی زمینی رو انجام بدم ممکنه بیشتر توضیح بدی؟ آره آره میتونم توضیح بدم من توی مزایده زمینه یه کارخونه برنده شدم میرفتم برای تحویلش ولی شما گفتید که متخصص مغز و عذابید درسته؟ خب الان هم تکسیب نمیکنم یعنی شغلای دیگه هم داری؟ ها گاهی ساخت و سازم میکنم پس مهندس هم که هست <تصفيق> <تصفيق> آخه هرکی ساخت و ساز میکنه که مهندس نیست گربونت برم با این کار حال میکنم میخرم میفروشم خراب میکنم میسازم فکر بکنم گررا و مدیر بیمارستان بودن هر کدومیشون شغلای پر درامدی مسلوب میشه و شما برای درامده بیشتر شغلی رو انتخاب کردید که اصلا در تخصیص شما نبوده درسته؟ آخه اینکه شغلم نیست سرگرمیمه حابیمه یعنی پول این همه معاملات کلون اصلا برای شما مهم نیست؟ ببین پول همیشه مهمه همیشه به قول امریکایی ها پول حرف اولو میزنه درستم میگنم؟ میشه به بفرمایید در حال حاضر ثروت شما چقدره؟ نه یعنی چی؟ آخه... واقعا هیچ که نمیدونه خودم هم نمیدونه مازه رو قصم بخورم ولی نقد سی چهل میلیاردی میشه غیر نقدی چه؟ پولی زمین و مستقلاتی منو بردارم دیگه زمینبازم ایشون عتیقه بازه منم زمینباز به من بگیم ببینم ارزش دارایی غیر منگولتون چقدره؟ نمیدونم ولو ولی اگه بخوام به دلار امروز بگم دیویستایی میشه یعنی سی نقد 20 میلیارد غردن امروز یعنی چی امروز گفتم دیگه آخه شما که تو بازار نیستی ارزهای هی بالا پایین میشه دیگه ممکنه پس‌ورده بیشتر هم بشه میشه برای دادگاه توضیح بدید این همه ثروت رو از کجا آوردین از پدرتون که به نرسیده چرا رسیدم از پدرم کلی فقر رو به وقتی به من به ارث رسیده البته فقر گناه نیست ولی من ازش متنفرم بعد پولدار می‌شدم که شدم چطور میشه یه دفعه آدم انقدر پولدار بشه؟ مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ میبینید دیگه. آدم باید جنم داشته باشه. بعضی دیگه بخورنمین خوشم نمیاد. اصلا نمیفهممش. آدم یا باید داشته باشه یا نباید داشته باشه. از اعتدال و این جور حرفام خوشم نمیاد. چون اعتدار صفته آدمای تنبل و راحت طلبه که مشخصا من جزوشون نیستم میشه با این جملات کلومبس و از جواب دادن به یه سوال ساده تفری نرید و بگید این ثروت شما از کجا به دست آوردید آخه نمیشه به این سادگی جواب داد من که این ثروت رو یه شبه به دست نبردم یه عمر زحمت کشیدم خیلی ها تو عمرشون زحمت بکشن ولی یه صد هزارم ثروت شما رو به دست نمیبردن خب دیگه اون به آدمش مربوط میشه و به چی به جنم شما اول سرمایه‌تون رو از چه کاری به دست اون از اولین جراحی هم تو ایران و یه مقدارم عرض که با خودم اوورده بودم میشه بفرمایید این مضمان چند سال پیشه؟ ده دوزار سال پیش یعنی شما تو این ده دو ساله انقدر پولدار شدیم شما کجا این بابا؟ اصلا خبر ندارین دورورتون چی یه کسایی که دوزارثبات ندارن معنوص از کجا آمدن؟ یه شب ده برابر ثروت منو به جیب میزنن باز که من زحمت کشدم درس کندم کار کردم شما قایدتا اون موقع معروف نبودید پس تعداد عملاتونم نمیتونستن این باشه، بشه درسته؟ نه درست نیست چون یه دکتر متخصص از فرنگ برگشته یه عرج دیگه ای داره به خصوص که تازه اومده باشه بعدشم بالاخره هر کس اومد عملش میکردیم دیگه یعنی چی؟ خب، یه دیل که باید عمل میکردیم یه دم مشکوک بودن یعنی مشکوک بودین اما عمل میکردین آره شما سال جوابه نارو قبلا با من مشورت بکن کدوم سآلون همین ها رو شما نبقید خودتو ناراحت کنیم یا بلدم جوابشونو بدم ببینین عمل میکردیم چون از عمل نکردن بهتر بود هیچ خانواده ای رازی نمیشه که ریسک عمل نکردن رو بپذیره همشون با رضایت رضایتنامه کتبی به ما اجازه عمل می دادن پس ما کارمون قانونی بود درست بود؟ در واقع شما از نااگاهی اونا استفاده می و مریضاشون ها عمل می کردید حتی اگر لازم نبود؟ اعتراض دارم آقا به چه اعتراض دارید جناب وکیل مدافع؟ ایشون برداشت خودشو به موکل من نسبت میده. مزمود هم سوال کردم ولی شما جوری سوال میکنی که ما وکل من جوابی بده که دوست دارید اعتراض بارده ادام بدید کنال دسته خیلی عالی بود خیلی خوب بود اصلا دستور میدم حقوقتو اضافه کنن آقای سایدی خیلی واضح به دادگاه بگید شما کسایی هم که مشکوک و عمل بودن عمل میکردید تو علم پزشکی وقتی مشکوکی یعنی همه چه پنجا پنجاست ما مینو در کمال صدا اگه اجازه میداد عملش می کرد تو علم پزشکی شما راهی برای اطمینان بیشتر نداشتید چرا حتما حتما راهی هست ولی من دارم در مورد مریضایی حرف میزنم که تومور مغزی دارن آن. یعنی زمان عامل مهمه یعنی شما اونا رو بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار میدادید تا به اون چیزی که شما میخواهید رضایت بدن اعتراض دارم شما دارید به سوالات من مسیل میدید به چی اعتراض داری من دارم حرفای خود متهمو تکرار می‌کنم. شما حق ما حرفای من رو به خاطر خودتون تفسیر کنید. من حرفاشونو تفسیر نمی‌کنم آقا. من حرف خودشو دارم می‌زنم. ساکت باشید آقا. ساکت باشید. نظم جلسه رو حفظ کنید. اعتراض وارد نیست. لطفاً بفرمایید بشینید جناب وکیل. شما به ادامه بدید آقای دادستان. آقای سعیدی شما بیمارتون رو بر سر مرگ و زندگی قرار می‌دیدید؟ و اون وقت ازشون میخواستیم که تصمیم بگیرن ما رزایت داشتیم رضایت نامه کتبی همشون توی بایگانه بیمارستان موجوده پس بیخود به خودت زحمت نتیم. خب، وقتی توی این موقعیت قرار میگرفتن گرفتن میتونستن تصمیم درستی بگیرن یا تصمیمی میگرفتن که شما شمادهتون میخواست. خب اونش دیگه به ما مربوط نمیشه. مهم اینه که ما کارو قانونی نکردیم شما این روییه رو دوازده سالی که ادامه داریم رویه چه رویه ای من کارمو به بهترین وجه انجام دادم برایم که معروفم هم. همه قبولم هم دارن ولی ایده چشم دیدن موفقیتای منو ندارن چشم دیدن موفقیتای پسر عباس آقا ماسبند که تحویلش نمی گرفتن ندارن پس برام پا پوش دوختن ولی یه سال طول نکشید همه چی رو راس رسید کردم چطوری زیر آمتون چه, چه میدونم یه مزخرفی سرهم کردن یه سال پروانه‌ی پزشکی‌م معلق شد ولی سرشون رو کوبیدم به تاغ کوباتی که بهتون زدن چی بود مهم نیست بذیش بود. آقای سایدی اینجا دادگاه خواهش می‌کنم بفرم آخه خنده داره. بهم به گفتن مرده عمل کردی. مرده عمل کردی؟ آخه چطوری تهمت رو بهتون زدم؟ چه میدونم یکی از این دکترای جوون، از این تازه به دوران ها که شورای انسان دوستن رو میدن. چون داشتش که من یه مریضی رو که شب قبل مرده بوده، فرداش عملش کردم. در حالی که مزخرف می‌گفت. اون مریض تو اتاق عمل زیر من مرد. حَمم شاهدام. لازم اصلا چه فرقی می‌کنه من پولونو پیش یه جا گرفته بودم ببینم تونست این موضوع رو ثابت کنه بچه‌ مردومی که نه خب پس چرا پروانه‌تون رو باطل کردن باطل نکردن معلق کردن اونم علتش این بود که این پسره مثلا رسانه‌ای کرد جفسازی شد اونم جوگیر شدن ولی بعد به صورت به اشتباهشون پی بردن مگر میشه همیشه به همین راحتی باشه که شما حرفیشو می‌زنید <تصفيق> آوار معلومی که میشه ببینین یه دونه دیوونه یه سنگ میز تو چا صد تا نمیتونن درش دلش بیارن. ولی خب اینا نتونسن حرفشون رو ثابت کنن. یعنی مدرک و شاهد و اینا نداشتن. درست که همونجا تو اتاق عمل کلی آدم بود، دستیاران بودن. چراش هیچ‌کدوم شهادت ندادن؟ به این میگن آدم باهوش. یعنی شما این کارو کردیم ولی نتونستن ثابت کنن. نه من این کارو نکردم. چرا هفت دندون من میزاریم. از حرفاتون اینجوری میشه برداشت. اعتراض داره. جنب قاضی، جلو آید دادستان رو بگیرید جلوی منو بگیرید؟ ساکت باشید آقایان، ساکت باشید نظم جلسه رو حفظ کنید جناب وکیل مدافع آقای دادستان تشریف بیارید آقای سر اون پزشک جوانی که به شما تومد زد چی ازش شکایت کردم ده سال پروانشو معلق کردم در مقابل کاری که شما کردید اون چی کار کرد؟ چی کار میتونه بکنه؟ ایچی؟ رفت قاز به بگذریم بگذاریم از این که یه <تصفح> مدت بعدش به غلط کردم افتاد و هر روز پشت در اتاق من بود که معذرت بخواد ولی حالا حالا باید داره بدوعه بسرکتا آقای سعیدی، شما گفتید مدیر بیمارستان خصوصی خودتون هستید این سمت را کی به شما داد؟ متوجه نمیشم چی میگی. منظورم خیلی بازهه کی شما رو مدیر کرد؟ خب اعضای حیعت مدیره حیعت مدیره را که انتخاب کرد؟ خب من خودم انتخابشون کردم یعنی شما مدیر بیمارستانی شدید که اعضای حیعت مدیره چه خود شما انتخاب کرده بودی؟ <تصفيق> همون بیمارستان مال منه. اصلا من ساختمش. پولشو دادم، زمینشو خریدم، دادم نقشه‌شو کشیدن، رو وارد کردم. صاحبشم. خب شما بشی مدیرش؟ بیمارستان کی ساختید؟ حدوداً 7 سال. چه سالی تو کار خرید و فروش و ساخت و ساز ملکی؟ یه دو سه سالی بعد از اینکه برگشتم، دستو گرهختم. این کارو کردم تا اینکه با آقای براتی آشنا شدم. از اون موقع ورق برگشت. شغل آقای براتی چیه؟ ولی هیچکی نمیدونه. یعنی منم نمیدونم. از این چیز هستی از این آچار فرانسا هستن که همه کار از دستشون برمیاد. یعنی به همه جا خرشون میره. چه میدونم، اگه کارش گیر میکنه بهش، کارشو را میندازه. تو این مایاس. سرخط تو داد دستم، منم رفتم تو تهش کار شیرینیه. آقای براتی، چه سرخطی داد دست شما؟ کسب و کار شرافتمندانه. کسب و کار شرافتمندانه. ممکنه بیشتر توزید؟ چجوری بگم؟ اما مثلا یه نمونه یه نمونهش اینه که یه سری کارخونه قدیمی هستن که در واقع ورشکستن ولی فعلا لک لک میکنن خب ما میریم با هیات مدیرش هیات رئیسش صاحباش رئیسش بالاخره صحبت میکنیم که در ازای گرفتن یه درصدی از سود اعلام ورشکستگی کنن وقتی که اونا اعلام ورشکستگی رسمی می ما میریم تو مزایده شرکت میکنیم کارخونه رو میخریم بعدم میکوبیمش دیگه میکوبیم میسازیم میریم بالا چه میدونم شهرکی مجتمع تجاری پاساج برج بالاخره یه چیزی میسازیم دیگه همونا سود میبرم همه گرفتن مجوز تبدیل کارخونه به مجتمع مسکونی و تجاری کار آسونی نیست آره راست میگیم خب ولی ما اول میسازیم اگه کارش می‌کنیم دیگه؟ یعنی غیرقانونی کارو می‌کنین؟ نه. من هیچ وقت کار غیرقانونی نکردم و نمیکنم اگه بتونی یه سند غیرقانونی از من و پیدا کنی، به جایزه میدم. جلو حمی میگم. یعنی شما تایید می‌کنید که با سهامداران کارخانه‌های قدیمی شریک میشید، زمین و کارخونه رو میخرید و بعد اونو رو میکنید اون این در واقع تعطیلن. خودشونو مسخره کردن کار می‌کنن. ولی شما گفتید که بعد از شراکت با سهامداران و اعضای هیئت مدیره اونا اعلام ورشکستگی کارخونه رو میکنن در صورت که قبلش کار میکردن شما نمیتونید این حرفو تکذیب کنید من تکذیب نمیکنم اخه کار کردن نیست یه شیفت در روز برای یه کارخونه چند هکتاری کار کردن به هر حال یه تعداد آدم زندگیشون بسگی به همین یه شیفت کار بره خب زندگی اونا به من چه مربوطه پس بیخیال مربو میشه. به همون که استفادهشون کردن شما با همونایی که استفادهشون کردن پیشنهاد اعلام ورشکستگی کارخونه رو میکنید و کارخونه رو تعطیل میکنید درسته؟ یه پیشنهاد میتونن قبول نکنن. عین پیشنهادی که شما به مریضاتون میکردید. ببین من هیچ وقت هیچ کس رو مجبور به هیچ کاری نکردم. شما پیشنهادی بهشون میکنین که نتونه بعد کنن. من فکر میکنم شما مثل من فیلم زیاد نگاه میکنید. من پدرخوانده نیستم دون نیستم. شما چه قروزنامه میخونید؟ هیچ بل کارای مهمتری داره عجیب نیست که نمیدونی که خیلی خانواده همین آدمایی که شما از کار بیکارشون کردین از هم می پاششن هم تحمل این فشار روانی رو ندارن یا خودکشی میکنن یا روانه تیمارستان میشن. بله درسته. هر روز کلی آدم بیکار میشم برای من مسئول ساماندهی زندگی اونا نیستم. خب شما میتونستید به سرنو بشت همین آدمایی که بیکارشون کردیم کنی هر کسی راه خودش رو کار خودششون میکنه من که مجبورشون نکردم در زمان کارگران با اون چندرغاز حقوقشون هر جایی برن همونقدر آمد دارن به خداگی اگه برن سر گدایی کنن یا گل بفروشن بیشتر در میرن یعنی فکر میکنید همین آدمایی که کار بیکار شدن هر جایی دیگه برن میتونن نسمون کار بشن بله بله بلی من مسئول زندگی اونها نیستم پس به کی مربوط میشه که یه تعداد آدم زحمتیش از کار بیکار بکنید. او خودتون مرتمی دیار بشین اعتراض دارم اعتراض دارم بفرمایید بشینید من خودم برادم جوابشونو بدم ببینید آقای عزیز من آدم باهوشیم شما هم همینطور ما نمیتونیم کسی دیگه ای باشیم. ما خودمونیم دنیام دنیای بیادالتیه اگه باش کنار بیای شریک جر میشی اگه بخوای عوضش کنی تبدیل میشی به بی جلاد بیره پس بخوای شعارهای انسان دوستانه آبکی ندید من کسی رو مجبور نکردم شما اگه انسانیت داشتید اونا رو توی موقعیت قرار نمیدادید که هیچ چیز دیگه رو نتونن انتخاب کنن به تو چیزی که مد نظر شماست شما از همه آدم متنفرید. شما حیولا این آقا حیولا. حق توهین ندارن اعتراض دارم ایشون به بابا کلمت توحین میکنه بشین آقا بشین ببین بابر کن من آدم ها رو دوست دارم اما به شیوه خودم شما گوش کن قانون قانون جنگله قدرت نداشته باشی میخورنت ادالت و ادالت خواهیم یه توهمه هر کس خواسته ادالت برقرار کنه جهنم برقرار کرده پس تکلیف انسانیت چی میشه؟ تکلیف هم اینه که من میگم چیزی مهمه که وجود داره یعنی واقعیت انسانیت که وجود خارجی نداره تو کله توه ما زندگی میکنیم که کار کنیم کار میکنیم که پول در بیاریم پول در میاریم که قدرت داشته باشیم قدرت داشته باشیم که بتونیم زندگی کنیم میبینی این یه چرخ هست. همیشه بوده بعدن هم خواهد بود ما که نمیتونیم عوضش کنیم برای خب بازنشسته ها که تو این چرخه نیستن اینو قبول دارم چون قسطی نفس میکشن که یه روزی هم بمیرن برای همین است هم که من نمیخوام بازنشسته بشم شما قاتلید. شما جنایتکارید. شما رو با ظلم ستمتون نابود میکنین. شعار نده شعر نده توی این دنیا یه دی متولد میشن که لهشن یه دم متولد میشن که له بکنن من نمیخوام لحشم نمیخوام له کنم برای همین سعی بکنم واقعیتو متعادل کنم ولی واقعیتو عوض نمیشه کرد من هیچ فرز ظلم و بیعدالتی رو قبول ندارم در زیر بار حرفای غیر انسانی شما هم نمیرم و به شما هم اجازه نمیدیم. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه اجازه نده. ببین، اصلا ما سر چی داریم بحث می کنیم؟ اگه مدرکی داری وردو بیار. نداریم هم بریم بخوابیم. مدرک تو خودت ابتدا ساکن جور جرمی. تو هر غلطی که بخوای میکنی. اون وقت میگه مدرک تو اصلا از قانون چیز سر نمی بشید، آقا آروم باشید. به من میخندی؟ به من میخندی؟ مگه مسخره میکنی؟ تو آدمی هستی تو هیچ چه سرت میشه؟ تو اصلا هیچ خبری نیست. سرقب... تو هر سفره هر خانه‌ای. من مسخره شما بچینید. شما بزنید دیگه. تو دستور بازواشتو شما رو میدم. کی میخواد منو بازداشت کنه تو؟ دادگاه برای 10 دقیقه تنفس میکنه. یه سیگار بده من. اینجا نمیتونی سیگار بکشید. برای چی؟ برای این که قانون اینجاست من هم اینجا سیگار میکشم یه سیگار بده من این سیگاره بگی برو بیرون بکشی یه هوایی بخور. باشه باشه من هفت سیگار ترک کردم برای من فندگ روشن بکنی؟ حبی خانون یه داغ با بیسکویت تا در چند ساعت میشه؟ یاد شکتا دید آقا سابه بفرما شیرکاکاون سر نشه بفرما نمیخونم به چی میخندین؟ به من میخندین؟ نه به شما چرا؟ خیلی خوب. باشه این بازی مزقرتونو تمام کنیم میخوام برم بگیرم بخواهم باشه باشه باشه آقا این ببینید قبل از اینکه شروع کنید من این رو باید به شما بکن اگر ایشون تو صحبت هایی که میکنه دو مرتبه به من بد و بیراهی بگه یا اینکه چه میدونم عصبانی بشه و عدب رایت نکنه من دیگه ادامه نمیدم تو هم زیادی بهتون میدون دادم. بس دیگه متوجه باشین چی میگین آقا اینطوری حرف نزن ما که خودمون میدونیم تو گنا میدونیم تو رو خدا وکیل مدافع ما رو نگاه کنین ببین آقا من از الان به بعد وکیل مدافع نمیخوام خب دوست دارم هرچی خودم میگم بگم اصلا میخوام خودم از خودم دفاع کنم شما از شغلی که داری خلی بفرمایی بریم قولتون رو بکشین من تو روش تحنو بمیزرم من نمیخوام نمیخوام کجوری به چه زبونی بگم آقا من وکیل مدافع نمیخوام آقایون از این لحظه بعد خودم وکیل خودمم تموم شد رفت شما زیادی اصرار کنین مجبورم یه چیزی به شما بگم که در چند سنو سالتون نیست آقا اجازه بدین دادگاه کارش رو شروع کنه دادگاه اگه اینجا دادگاهی که شما نباید اجازه بدید که ایشون هر بد و بیرایی که به دهنش میاد بگه مگه شما قاضی نیستی خب یا قانون قبول داری یا نداری دیگه اگه قانون قبول دارید که من گفتم هیچ کار غیر قانونی نکردم اگرم قانون قبول ندارید که کلاه همیگی ما پس مرکز متاسفانه تو از قانون حرف میزنی تو سرطاپات غیر قانونیه تو اساس زندگیت غیر قانونیه فقط تونستی با مدکسازی و کردن شواهد خودت چنگ قانون خلاص کنی ولی این دادگاه این اجازه رو به تو نمیده به این میگن قانون انسانیت آه, آه فهمیدم این دادگاه قائل به انسانیته آره منم که محاکمه میکنید ش بقیه آدمام همه هم آدمای پاک و معصوم و مظلومن که من فریبشون دادم از بهش بیرونشون کردم آره نه آقا جون نه اونی که گول میخوره دوست داره گول بخوره پس بز بخوره نوش جونش اونی که تقصیر خودشو بنزه گردن بقیه به درد لای جرزم نمی‌کنه تو میخوای با این کارا گناهاتو لاپوشونی بکنی نکنه فکر کردی فرشته مقدسی که خداتون پرستاره نه نه من نه فرشتم نه شیطانم آدمم فهمیدی آدم تو فکر میکنی خدایی که اون بالا نشستی بدون هیچ دلیل و مدرکی همه رو محکوم میکنی همه رو گناهکار میدونی نه، من خدا نیستم. من دادستانم. وقتی محکومت کردن می‌فهمی. محکومم کنی؟ تو محکومم کنی؟ تو رو خدا منو نخندون. چون حوصله خندیدن ندارم. حوصله هیچ کدومتونو ندارم. و با پشم تو آینه خودتون رو نگاه کنین شما مثل من آدَمین، آدَمین. این آدم تا حالا خودت تو آینه نگاه کردی؟ چقدر دیو سیرتی. ان واسه که آینه بسونه اون سیرت ناپاکت تو رو نشون بده شماها که سیرتتون پاکه بر جهان کافیه آقایون دنیا رو نمیشه تغییر داد نمیشه تغییر داد اگه میشد قبل از ما داده بودن هزاران سال پیش نمیشه تغییر داد این سرتون رو نکوب به دیوار اون سر شماست که نابود میشه دیوار که توش نمیشه سر جاش من تو تمام عمرم با شرافت زندگی کردم تو تمام عمرم هیچ گناهی هم نکردم هیچ کس هم نمیتونه خلافش رو ثابت کنه هیچ کس به شما میگم فکر میکنین وچه اجتماعی من چجوری به دست آمده چجوری به دست آوردم ها؟ چرا هر جا میرم همه جلوم دلار راست میشن چرا؟ به خاطر پولمه؟ نه قدرتمه؟ نه به خاطر اعتبارمه اعتبارم برایش یه ام زحمت کشیدم و به هیچ بنی بشری اجازه نمیدم که خطش دارش کنه چه برسه به شماها ها. به هیچ کسو باج نذنم تو زندگی و باجم نخواهم داد راست را میگم سر من بالا نمیگم میدارم فهمیدین به اون آدم هم که زیر دست پای من له میشن هیچ اهمیتی نمیدم چون زیر دست پای من له نشن زیر دست پای ادیت گله میشن مرده عمل کردی چون پولشو از پیش گرفته بودی خودت هم میدونی اگه عملش میکردی پولشو بعد پس میدادی اهداف مهم تو پول داره وردنه به هر قیمت شده ببین اونا آدم های از مرگ میترسن میان پیش من که از مرگ نجاتشون بدم منم از آدمای حقیر متنفرم هرکی نمیفهمه بهتره که نابود شه ضمن اصلا به تو چه مربوطه اونا خودشون میخوان مگه تو وکیل وسیع اونایی؟ به من چه ربطی داره؟ بله، به تو چه مربوطه؟ در زمان کاران رو برای پول نمیکنم چون انقدر دارم که میتونم صد تا مثل شما رو بخرم و آزاد کنم. همین که نشستم دارم باتون حرف میزنم، کلاتونو بنزین آسمون چون ممکنه پس فرده همین خونه رو بخرم و رو سر هر چارتتون خراب کنم. نزنم جامه صبرو، نزن. سلام ترکید ساکت باشید آقا، ساکت باشین. اینقدر داد نکشید سرمون درد گره. آقای دادستان سریع تر رو به دادگاه اعلام کنید آقای قضیب ایشون وقتی یک بار مرده عمل کردن پس میتونن بارها این کار انجام داده باشن. وقتی یک بار با خرید زمین یک کارتونه تعداد زیادی آدم از کار بیکار کردن و خانواده از هم پاشوندن و به سرنوشتشون هیچ اهمیتی ندادن پس میتونن بارها این کار کرده باشن. ایشون تونستن خانواده یک بیمار رو تو شرایطی قرار بدن که به خاطر ترس تصمیم اشتباه بگیرن. داد این جانب به عنوان مدعی العموم با توجه به اقرار سریع متهم نسبت به استفاده از عدم آگاهی افراد سوء استفاده مالی آنها به علاوه بیکار کردن و از هم پاشیدن خانواده تعداد زیادی از این افراد که به استناد مطالب چاپ شده در بسیاری از روزنامه های رو انتشار منتج انتشار به جنوم خودفروشی یا مرگ این افراد میشه این جانب آقای سابر سایدی رو از لحاظ قوانین بشری که بر پایگ انسانیت بنا شده گناه کار و از بسر دادگاه محترم خواستار اشد مجازات برای ایشون هستم شما واقعا دیوونه این دیوونه این به خدا وکیل مدافع می تونه آخرین دفاعیاتشو از متهم انجام بده من به عنوان وکیل مدافع متهم بشینید کی گفت پاشین بشین من کاری نکردم که کسی بخواد از من دفاع کنه متهم میتونه آخرین دفاعیاتشو رو اعلام کنه مغز هر چهار تا تون عیب داره باید عملشین به منشین میگم که براتون وقت بذاره البته امیدوارم اینقدر دیر نشده باشه که مجبور بشم مردتون عمل کنم آقای منشین لطفاً اون برگه ها رو بدین به من با توجه به اظهارات روشن متهم و اقراریشان در خصوص موارد تفهیم شده دادگاه آقای صبر سایدی را گناهکار دانسته و او را به اعدام محکوم می کند. حکم دادگاه صبح فردا رأس ساعت پنج در همین محل اجرا خواهد شد. اصلا شما کی هستید که می خواهی حکم بدید؟ شما کی هستید که سرنوشت روش میکنید؟ من احمقو بگو که نشستم به حرف چار تا پیره مرد پیزونی گوش میکنم جون بابای همتون آقا این شب بخواه من رفتم بخواهم شب بخواه نخواب این تا بیام قرصتون رو بزن من بیران بیارمش بیرون هوا سرده بارو میاد، سرما می کنیم آمد بیا پسر، بیا بیا برا، برو خوند برو کنار بوش کن، ببرین تو تا اینجه بمونی، سرما کنی، تینه پلو می تا صبح نمی اتاق آماده کردم. بیه برین تو تا. بیه بریم شدم چی می‌دونی؟ چی می‌دونم؟ چی چی می‌دونم؟ تو چاره‌ای نداری. خلاص. هر کردی. نگاه من نابود کردم. چی می‌دونیم نمی‌شمارد. اوه، اوه. همه چیز فیکت می‌کنیم. من می‌فهمم. چه کار کردی؟ چی هر چی کردی؟ و بگید کی؟ دور آب می‌دادی. چند ماه آب می‌دادی؟ هزار ماه آب می‌دادی؟ هزار ده هزار می‌دادی. اوه. آنچه آسیب دیدم که ما هم تو رو که ما رفتم فرزادم. دیدی که اونجا. اینقدر دیدن تا آخر عمرم بس دیدن دیدن دیدن تا حالش هم اون رفت. هیچ ندارم. اگه می‌خواستمم من نمیتونستم متوقف چون که میده ازم اینجا وقتی خودمی صادر میشه دیگه هیچ کاریش نمیشه شاید بیرون از این درد بتونی با خولت قانون آدم ها رو بخری و آقایی کنی اما اینجا نه این خونه قانون قانون ما قانون نانوشته ای که فقط بر اساس انسان حالا پاشو پاشو بریم تو دسته تو بگنند، بیا بریم با که بریم پای شو نمیشونین من با کاشی که آقا با کاشی که پای شو بریم تو اتاق پای میگم بیرم بریم بیا اینه ای که اتاق شما اینجاست یا این لباس رو بگید به سرما میخوری مثل موش آب کشیده شدی میخوای تو پوشیدنش کمکت کنم با این لباس ها که نمیتونی بخوابی خب من این لباس ها رو عوض میکنم اینجا شاید نظرت عوض شد ولی نداری چیزی اینه خیلی ساعت پنجه باشو بابا من میخواستم خواهش کنم که منو نکشید لطف کنید منو نکشید من تماس میکنم منو نکشین. اگر اجازه بدی؟ خب اجازه بدید من یه بزنم حرفمون بزنم. به خودم من آدم دیگه میشم. اصلاً یه آدم دیگه شدم. شما بذاریم من برم بیرون. ببین بذار من برم بیرون. تو رو خدا بذاریم من برم بیرون. اگه بذاریم من برم بیرون من پول نمیدم اصلاً. شما. برو صابونو بخور شما آماده است. سلام صبح بخیر. بیا بریم صابونو بخور. صابونو از بیا. عمر من ای گلت شد بره تو به به به دست در نکار عمر من ای گلت شد بره تو هنوز اینجا باعث دی چون نرفتی سابونو بخوری برد ما میام بیاوریم صبور. بیا بیاوریم صبور نباخو. عافت خرم من عزیز سلام غصادر صد بخیر با سنگک دان. بفرم. این هم کیفه افتادوت پشت در برایت تمیزش کردم پس <تصفيق> ب... چی شد مگه خودت نگفتی اتاق باستفانه از ات نمیخوای برو ببین حالا که داری میری فت کن چیزی یادت نرفته شرط شرط اول و باختی ببین سرمور رو گنده اینجا من نشستم پس هرچی من بگم درسته بازی تمام شد و تو را در بازی کشت